قصه های هزار یک شب شب چهارده هم. آن گدای یک چشم گفت ای خاتون چون دختر ملک با کارد دایره کشید تلسماتی بران نوشت و فسونی چند بخاند دیدیم که قصر تاریک گردید و افرید پدیدار شد همگی هراسان گشتیم دختر ملک با او گفت لا اهلا ولا سهلن افریت به صورت شیری پاسخ داد که ای خیانتکار کار چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی؟ آخر من و تو پیمان بربسته بودیم که هیچ یک دیگری را نیازاریم. حال که تو خلاف کردی آماده باش. پستهان باز کرده مانند شیر به دختر موی از گیسوان فرو گرفته فسونی بر او دمید. در حال شمشیر برنده شد و شیر را دونیمه کرد. سر شیر به صورت کجدمی شد دختر مار بزرگی گردید با هم آویختند. پس از آن کجدم به صورت عقابی شد دختر به صورت کرکس برآمد. زمانی به جنگیدند گربه گربهی شد سیاه دختر به صورت گرگ برآمد. افریت اناری شد و بر هوا بلند گشت و بر زمین آمد بشکست و دانه های آن پاشید زمین قصر از دانه انار پر شد در حال دختر خروسی گردید و دانه ها برچید دانه از آن به سوی حوز رفت خروس خروشی برآورده بال و پر همی زد و به منقار خود اشارت همی کرد ما قصد او را نمیدانستیم تا اینکه آن یک دانه را بدید خواست که او را نیز برو باید دانه به حوز اندر افتاده ماهی شد. دختر خیشتن در آب افکنده نهنگ گردید. با هم در آب و فریاد کردند تا افرید به در آمده شعلی آتشی شد و از دهان و چشمان و بینی او آتش فرو می ریخت. دختر نیز خرمن آتشی گردید. ما از بیم خواستیم که خود را به حوز درفکنیم. کنیم پس آنها با هم درآویختند و آتش به یکدیگر همی افشاندند و شراره ایشان به ما می رسید ولی شراره دختر بیازار بود پس شرری از افرید به یک چشم من برامده چشم من نابینا شد و شرری به ملک برامده زنختانش بسوخت دندانهایش فرو ریخت و شراری دیگری به سینه خاج سرای بر در حال بمرد. ما به حلاک خیش تندر دادیم و به تشویش اندر بودیم که گوینده گفت شکست خورد هر که به دین بزرگ آدمیان کفر ورزید. دیدیم که دختر ملک از میان آتش به در آمده مشتی خاکستر گردید. پس از آن دختر پیش من آمد و آب خواسته فسونی بران دمید و بر من بپاشید به صورت نخوست برآمدم، آمدم ولی یک چشم نداشتم. پس دختر گفت ای پدر من نیز بخواهم مرد. اگر آن یک دان نار را پیش از آن که به حوز اندر افتد رو بوده بودم جان به در می بردم از آن قفلت کردم. از حکم تقدیر گریزی نباشد چون قضا آید طبیب ابله شود دختر به گفتگو اندر بود که شرری به سینش برآمد و به سوخت و در حال مشتی خاکستر شد همگی به حیرت درماندند و من با خود می‌گفتم که کاش من می‌سوختم و چنین زیبا سنمی را که با من این همه نیکویی کرد، به دینستان نمی دیدم. چون ملک دختر خود را در آن حال بدید، جام بر تن بدرید. زنان و کنیزان گریان شدند و نالو و خروش از همگان بلند شد و هفت روز به ماتم بنشستیم پس از آن ملک خاکستر افرید بر باد داد و بر سر خاکستر دختر قبهی ساخت و همه روزه به قبه اندر شده همی گریست تا وینک ملک را بیماری سخت روی داد پس از یک ماه بهبودی پدید آمد مرا پیش خود خانده گفت کاش روی نامبارک تو را ندیده بودم که مرا به دین روز نشاندی و سبب که دختر من شدی الحال از این شهر بیرون شو من به گرمابه رفته زنخ تراشیده و از شهر بیرون شدم و نمیدانستم به کدام سوی روم و در کار خیش حیران و سرگردان بودم و به هایی که روی داده بود همی گریستم و این ابیاد همی خواندم فریاد من از این فلک آینه کردار کاینهی بخت من از او دارد زنگار آ سیمه شدم هیچ ندانم چ کنم من آجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار از گنبد دوار چنین خیره بمانم بس کس که چنین خیره شد از گنبد دوار پس کوه و هامون نبردیده به دار و سلام شتافتم که شاید خلیفه را از حالت خیش بیاگاهانم چون به دینجا رسیدم گدای نخستین را دیدم که نیز همان دم رسیده بود گفتگو بودیم که گدای سیوم برسید با یکدیگر یار گشته همی گشتیم که قدر ما را به این مقام پر خطر رهنمون شد خداوند خانه گفت از این هم بند بردارید چون بند برداشتند گفت تا حکایت یاران نشنوم نخواهم رفت آنگاه گدای سوم پیش آمده گفت ای خاتون مرا حدیثی است عجبتر از حدیث هر دو و آن این است که من ملک زاده بودم. گدای چون پدرم بمرد من در مملکت بنشستم به عدل و داد رعیت و سپاه خورسند داشتم ولی مرا به سفر دریا و تفرج جزیره ها رقبت تمام بود روزی برای تفرج ده کشتی ترتیب داده توشه یک ماهه به کشتی ها بنهادم و به کشتی نشسته بیست روز در دریا تفرج کردیم تا به جزیرهای برسیدیم دو روز در آنجا مانده باز به کشتی بنشستیم بیست روز دیگر کشتی براندیم شبی از شبها بادهای مخالف وزیدن گرفت و تا هنگام بامداد دریا به تلاتم بود چون روز برآمد باد بنشست و کشتی آرام گرفت ولی دگرگون آبها بدیدیم ناخدا به فراز کشتی بر شد و با حالت دگرگون به زیر آمده دستار بر زمین انداخت و تپانچه بر روی خود زد و گریان شد سبب آن سؤال کردیم گفت که آمادهی هلاک شوید گفتیم ای ناخدا سبب بیان کن گفت ای ملک چون به فراز کشتی بر شدم از دور سیاهی نمایان بود گاهی سیاه و گاهی سپید می‌نمود. من دانستم که آن کوه مغناطیس است و یازده روز است که کشتی به بیراه آمده کشتی ما دیگر ره به سلامت نخواهد برد و هنگام بامداد به کوه مغناطیس خواهیم رسید و آن کوه کشتی را به سوی خیش کشد و آنچه که میخ آهنین به کشتی است از کشتی بپراکند و بر کوه بچسبد و این ملک به فراز کوه قبه است مسین و به فراز قبه صورتی بر اسب مسین سوار است و نیزهی مسینه در کف دارد و لوح ارزیر از گردن او آویخته و تلسماتی بر لوح نقش کرده اند. تا آن سوار بر آن اسب نشسته هر کشتی که بدین مکان آید بشکند چاره نیست جز اینکه سوار از اسب بیفتد چون ناخدا این سخنان گفت گریان گشتیم و تن به هلاکت سپردیم چون بامداد شد به کوه برسیدیم میخهای کشتی پراکنده شد هر یک به سنگی بچسبید و تختها شکسته از هم پاشیدند جمعی از ما غرق شدند و جمعی خلاص یافتند من هم بر تخت چسبیدم موج مرا بدان کوه رسانید به فراز کوه بر شدم کس به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروپاست